شرط اول کارگردان سید مسعود اتیابی نویسنده شهاب عباسی موسیقی مانی منادیزاده تهیه کننده محمد کمالی پور <تصفيق> بازیگران ابر بددی گوقا جون اگه قراربول اتفاق بیفته که این پیمان میافتدار دیگه کابیز دیربا چ شد کور و موقع میخواست کلی اون ابیره می پرسییدیم و هستم نگار فروزنده یعنی اینکه ازای بدن رو ورداری بزار تو یکی دیگه پروین قائم مقامی خودم دیدم ب داشت می سییروس گجستا دکتر غلط کرد با تو خاک بر سر بیغ؟ الناز شاکر دوست میخوام یه برای دیگه به خاطر رضایت نامه احتاای کلی ازت تشکر کنم مرد جوانی بین جمعیت توی پیاده رو در حال حرکته تصویر انیمیشن مگسی دروبر تابلویی که روش نوشته سیرابی توپ و بهداشتی دل و قلبه بعد مگس به طرف زرفایی که دل و جگر و سیرابی توشه میره یه آقای با پشکش پلاستیکی میکوبه روی مگست سیمه جان خیلی کاروارم میزونه هی hey, تو هم به این وسط مزایم شد از چی میگه منیش اکبر کاروارش سکر ببه آقا برام بردر زن گل و گلاب برام جون از شانس ماه دیگه اون عذابگی شما که تو توهمه اینم از کارو کاسبی خود نه, نه من قریبم بازی در نیار پول جور کردی یا نه توی که میبین نقوضا جغت و جور شدیم برج مراقبت این مگسا او ازیر خواهی تو بسر اینجایی که من میبینم بیشتر واسق قایم شدن خوبه نه کارو کاسبی بعدش هم ببینم اصلا تو میدونی بهداش یعنی چی؟ هره این حالا هر چی فعلا باید ددکاری تو صافه که تو حالا آقا این کاری کردی یه هفته دیگه هم روش چون از خجالتش در میاد بسوتی سیرافروشی اکبر آقا تو پیاده رو پشت دیوار یه خونه است. یه ماشین با سی تا سر میشین کنار جدول پیاده رو نگاه نمی‌داره خبه نئیس خودشه هر روزان بدهیش اصلاف نکردی بفرما برام شد فره یه دوتو منی تایی چیمم بمونه منی شاکی نشد بچه ها بچه ها گفتن اکبر جیگردار شده باور نکردن ببینم همه ی دیل جیگر ها دیجا چند جیگر <تصفيق> همش به کارتون نمیاد لذیهاش مردونه هست اگه میشه مرهمت کن اون پولاد صاحب داره. حسین صاحب شو را ویسا که اگه داری، هر جو بهتر شما دخالت نکنی. آقایون آشنا اینجوریه. آره جیکا آشنای. اومدیم آقا رو بریم پیک. شما <تصفح> هم ویسا همینجا یکی از اون مردون شدی. <تصفح> ببینم آقا پسر، مثل اینکه تو نمیدونی من کی هستم. ببینم تو حالا اسم بران وروسی به گوشت خورده یا نه؟ مردی مرد قلدور قد بلندی پول از دست اکبر آقا میقاپه. مرد قلدار یه مشت میکنی تو سر بهرام بروسلی اکبر. این نامردو اصلا کاراتم واردو نامردو برادر منو میزنی حالا اول چونو میگیرم مرد قلدارو نوچش با بهرام اکبر درگیر شدن بهرام هم فراد میکنه آره رئیس مثلی که راستی راستی در را. اکبر نامرد حالا دیگه ما رو قال میذاری در میری حداقل دقت سب کنمانم دنبال دیا حالا تصاویر واقعی اکبر و بهرامو داریم که توی پیاده رو بین جمعیت در حال فرارند. مرد قلدور و نوچش هم دو اونا دارن میدونن. اکبر و بهرام بود و قلدور و نوچش بودو. حالا وسط خیابان در حالی دویدنن. رسیدن به یک کوچه خلوت. قلدور و نوچش با دو سوار برخورد کردن. دو شخص افتاد رو زمین. یه بشکه فرزی فلزی نفت افتاده توی یه کوچه اکبر میری تو بشکه قایم میشه قلدارو نوچش میرسن بهرام اونا رو میبینه و ددر رو حالا اونا دنبال بحرام هم به طرف خیابان بهرام هم داره میره اکبر از توی بشکه میاد بیرون بهرام در حال دویدن اونام دنبالش پشتی دکی روزنامه فروشی پسر جوون از دوچرخهش پیاده میشه دوچرخه رو تکیه میده به دکه و خودش میره طرف روزنامه های جلوی دکه. بحرام میرسه کنار دکه چشمش میفته به دوچرخه تونی دوچرخه رو بر میداره و به سرعت سوارش میشه و میره گلون رو میرسن کنار دکه. صاحب دوچرخه رو هول میدن و میرن حالا بحرام سوار دوچرخه داره دور میشه ماشین آقا قلدری با راننده‌می کنار رو نوچش نگاه می‌داره. سوار ماشین میشن. حالا تقییب اونا با ماشین و گریز بهرام با دوچرخه شروع میشه. بهرام به سرعت در حال فراره. ببین تو پیاده رو. اونها با ماشین توی خیابان به موازات بهرام در حال حرکتن. کمی از بهرام جلو میفتن. بهرام میپیچه توی یه کوچه. اونام دور میزنن. ای بهرام دوباره اومد توی خیابون. اونا بهش نزدیکتر شدن. یه ماشین بین بهرام اونا قرار میگیره. بهرام اومد توی خیابون دیگه. ماشین آقا قلدوره به بهرام نزدیک میشه. بهرام سرعتش رو زیاد میکنه. حالا به پشت سرش نگاه میکنه. اونا بازم به بحران نزدیک میشن بحران بازم با ترس به پشت سرش و ماشین اونا نگاه میکنه مسیرش رو کش میکنه و میپیچه به چم ماشین دنده اقب میگیری و دوباره پشت سر بحران مستقیم حرکت میکنه بحران میرسه به یه خیابانی که به یه پارکون منتهی میشه انتایی خیابان جدول گذاشتن ولی فضا برای رد شدن آبر و دوشبخه هست برای ماشین نه بحران رد میشه میره. آقا قلوره و دوستاش دور میزنن فحران وارد یه خیابان میشه پشت سرش رو نگاه میکنه اونا رو نمیبینه خوشحالی. دوباره سرش رو بر میگردونه باقر از اونا خبری نیست با خوشحالی روشو رو بر میگردونه ولی آه. بله تصادق پرت میشه با سرش کبیده میشه لبه جدول فحران موشون. ماشین آقا گلداره نزدیک میشه صحنه رو میبینن و به سرعت دور میزنن چرخای دوچرخای پنج شده روی زمین دارن دور خودشون میچرخن. پنج ماه بعد بهرام روی تخت بیمارستان دکتر داره با چراق قوه چشمای اونو معاینه میکنه بهرام هیچ واکنشی نشون نمیده یک کپسول اکسیژن هم بهش وصله حالای من تغییری نکرده نکردم اکبرو یه مرد و زن موسیقی توی اتاق هم جیسی های توی این وضعیت کمکی هم بهش نمیکنه. کنه فرندیته یعنی چی؟ ببینید ما همه یه تلاش خودمونو کردیم اگه قول بدید به احساسات خودتون قلبه کنید باید بگم که امیدی بهش نیست نیست؟ ببینید من نمی دروغ بهتون بگم نگه داشتن پسرتون تو شرایط فقط و فقط هزینه تراشیه تموم کرد می کوه بینب شدی زن بی پسر شدی خاک بر سرت شد فامیت افتاد که در مادر برام قش میکنه اونا الان روی برامکار دستن و بهش اون سران بست شده و درن میبرنش رو به بی یا اتاق بیمارستان خیلی ناجب که نگفتم دره اختیار داری نای دکتر شما کاری نکردیم فقط به وضعی نظام پزشکی تو نمکه آمون ببخشید بله یه چند لحظه میتونم وقتتون بگی وقت من نای دکتر بله بله بل بل. خواهش میکنم تست از این دفتر دکتر اکبر میرن توی اتاق بهرام کنار تختو با هم مشغول صحبتن. دکتر داره یه چیزی رو به اکبر میگه و اکبرم با ناراحتی به بهرام نگاه میکنه اینجا منزل پدری بهرامه. یه زنه جوان با سینی چای به طرف پدر و مادر میاد. اکبر یه استکان چای برمی‌داره. یه سروم از یه چوب‌رختی فلزی آویزون شده بو. به دست پدر بهرام هست. زنه جوانم گریه میکنه ازم به بهش خارج یعنی ببری بهش یه جایی دیگه از اونجا <تصفيق> مامان جون دکتره با ما صحبت کرد گوب آقا جون اگر قرار بود اتفاقی بیافته توی این پنیمان میافتر دیگه خلابی <تصفيق> مال که مغزی کرده یعنی یه هیچمو بدینی؟ چی دونی باگم کار از کار گذاشته؟ چی چیو کار از کار گذاشته؟ ما خودم دیدم بچه هم دوش نفس بگشید حالا جون، به قاتل اون سیرنگ میرن اون کاب که بشید وصله اون رو ازش بکشن، نفس هم دیگه نیستونه بکشن و فات، احمد، فلا بات آه، راستی یه چیز دیگه هم گفت دکتره چی؟ آبای دکتر گفت مرده که مریض شما با امید خدا رفتنیه و خدا رحمتش کنه بهتر نیستش که اما و احشام و جواهرات بدنشو بدیم یه من دو خدایی دیگه با رفتنیشون چند تا مریض دیگه به دنیا میان یعنی چی؟ یعنی این که عضای بدنشو ورداریم بذاریم تو بدن یکی دیگه باره تقریبا یه همچی خاک بر سری بی غیرتت کنم چرا با کله نرمدی تو صورتش بزنی دماغش خون بیار <تصفيق> ای بابا بزنم که کله دکتر مملکر که چی بشه میگین <تصفيق> دکتر مملکر دوشه دکتر یه جای دیگه باشه ای که مردی که جلود نشست. گفت جنازه بحرونه تو خیرات رو تو هم مثل برد نگاش کردی آخه من به تو دانوات نامر با اگه من یه واقعه سبخه دا آخاشون پدر عصبانی از چوب رختی بر میداره و پرس میکنه طرف اکن آخاتون یعنی چی این کارا؟ یعنی چیه زهر ما؟ آخه من که من چند دو بچه دارم چند پسر دارم که یکیجا خیرات چیه نمیدارم اینجوری که آقا دکتر گفت، مثل کلیه گلوه چیزی چیزیشو میزن به یه <تصفح> آدم مریض بیماری در <توسطور> مفت همینجوری <توسطور> میجا کردم من یک تالموی بچهم همونجوری بکیزه میدم گفته باشم همینجوری همینجوری هم که نه لابد. هدیه یک پولی مثلاً چقدر؟ بالاخره یه مقداری هست که بشه یه مراسم آبرومندانه سیوم و هفتم و بگیریم. و بگیریم به همه پلو ع نه نه یادم اومد چلو کواب به همه هرگم چلو کواب میدید چلو کواب برگو کوبیه خیلی روز اینو حالت خوبه؟ یه حالت چی خوبه همین کلو ببقوه تو میخوای پول خون پسر منه که ادعا میکنی رفیقته بگیری به مردم چلو کواب بدی توف به اون رود بیاد وا آقا جون بده به فکر آبرومونه همش همین نه بابا این آقا جونه نگه بذاره توضیح میدم دیگه بابا اقیش میتونیم میتونیم یه دستی و سر گوشه خونه آقا دینا بکشیم داره ساج خانم این تیلوزونه چیه انقدریه اینه وردلمهی هلیتیدی خانماده ها پنا خیلی توپه اگزیدی چیه ها چه زخویه؟ تو تقریب تبریز رنگ پوسی پیازی دست باف. خونه خودم خونه خودمونو بلکه خلی اروکارش رو تمام کنیم پایین کارش رو میگیریم یک سالی سایه ویستات بر آت برای توش دور بزنه یک جاب یک بر بیاره. یه جواب یا قل بیره. یه برادر زن که بیشتر هستیم خودم بیامون همه جوره خودمون. اشکال وقتی تو آدرس نداختی. بلکه من فکر کنم میلیون دیگه روشاقش زنی جمهان چه چای دوگه بقیه روزه بخته خودم مطمی دکتری بهرام براج و خانم اکبر با حیرت و همدیگه نگاه میکنن و پشت میکنن اگه حوزدار به احساساتشون غلبه کنن شروع کنیم لطفا آقایی تویی شما چی کار به احساسات ما دارید؟ بلد. حرفتونه بزنید من نشاندار هستم کامران نشاندار دختر نازنینم الان سالهاست هفته سه بار به خاطر کلیهاش در دیالیز میشه آخه حالت خوبه همون جونالا؟ بله من تو زندگیم رو هرچی دست گذاشتم بهش رسیدم ولی الان فقط سلامت دخترم برام مهمه. آخ، دختر نازیمه، از فرج. مرسی. حاضرم تمام زندگیمو بدم تا دخترم دوباره سلامتیشو به دست بیاره. ان شاء آقای دکتر گفتن شما حاضرین کلی پسرتون رو به دخترم بدین. انگار خدا بدین. شما نمیدونید با این کارتون چه شادی بزرگی رو به زندگی ما برگردوندی. نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم. همون فارسی بهترین زبونه. پس مصشکرم. واقعا متفکر بس بهتره که بدیم سر اصل بطلا آخه تو این دور زمانی هیچ کس بسر خونواده شما نید مالوان آماشون مالوان مهار الو سلام بابا درست میگم خانم ورسا سلام میرسونه. نه با من خیلی میگم برید سر عزل و بدلم. یه حرفای متفرقه باشه من میگم. میگه برید سر عزل مطلب نگران خواهر دیگه. باشه باشه. کی فکرشو میکن؟ دختر من با مرگ پسر شما دوباره متولد بشه. بارش بزاره برو میگم. بابا دلت فدات میشه. ای لینا <تصفيق> تو باز گریه کردی ای بابا ارام موقع گریه کردنی آما بفرمایید شما بله ارز بله میکردم بله. من به خاطر اینکه بخش کوچیکی از محبت شما رو جبران کنم حاضرم تمام صورت حسابای بیمارستان متقبل بشن البته شما میدونید ما این کارو فقط به خاطر شادی رو بهرام و ثبابش میکنیم بله. وگرنه خوب میدونید که پول عین چرک کپ دست میدونید وله بله ارز بله. کردم که تمام مخارج بیمارستان بله. همین. البته جبران محبت شما رو اصلا نمیکنه. شق مثلا نمیدونم. چرا نمی بنویسی؟ دیگه ولا هر کلمه خودتون دیگه البته این چیزی دیگه دارین میگید خیلی تمیزه. عکستون توش میوفته. یه خال دوش نداره. نو اینو درستم ها آره والا بچه بچم این اشاخ بود برزشگار، سالم صبح به صبح آب انارش ترد نمیشد مگه نفرن چه آقا؟ بله بله سفورا خانم بله. درست میفرمایید من بچه من پدرم درمده کلی زحمت کشدم تا به عرصه رسوندمش به بله. دنیا بله. که اومده قوی قوتی شیر خوش براش خریدم که وقتی بزرگ شد اغده ای نشه بله. کمبود نداشته باشه شیر مادرم میخورده حالا د <تصفيق> توی یک کافی شاپ شیک اکبرآقا با دو تا مرد جوون سری یه میز نشستن و دارن قهوه میخورن. بله ماجرا همین بود که خدمت تو این شوتوریه که در خونه همه میخوادن. اون بنده خدام دستش از دنیا کوتاست. بله وظیفه بازمانده هاست که کاری کنن تا روح مرحوم در آرامش کامل میشه کاملش. خب نفرمو دین کاری شما با من چیه من چی کار میتونم براتون میکنم آه. اینو خوب اومدید ببین میشه وای دو نشون زد یعنی میشه کاری کرد که هم روح مرحوم به قلوب درجات برسه همین که بازماندگانش به یه و نوایی اینطوری خب دو خیره بیشتری هم نثار روح مرحوم میشه درخشی من متوجه نمیشم بهتر نیست بریم سر اصل مطلب آه. اصل مطلب همین کار خیریه که گفتیم دیگه خب ما واسطیم برای این کار خیر فکرش هم کم میکنه این چه کاری بهتر از تمین یدکی برای خلق خدا شما که تو کار خیر بوی سقبت و رو بودی. خبرش رو داریم که یکی از گلیاشو چند دقی پیش دادی رفت حرف ما پیشنهاد همکاری تو امر خیره اینجوری زندگی شما یه تکونه اساسی بود. اون مرموم زنده که بود همیشه دوستاش زندگی مادرش اینه خودش من که دو مادرشون یه تکونه اساسی بخورد هلی خطبت <تص rip> خب چه بهتر عمل به وسیعتمه یه هم که از واجباته میبینی <تص> کار خیر همینه بالاخره آخرش نفرمودیم من چه کار میتونم برای شما انجام بدم؟ راجا گو و خان ما اکبر رو توی خونه مشغول شون مادر اسکناسای زیادیه که ریخته وسط اتاق راجا خیلی با اینا چونه نزدید نوتی راجا جونم اصلا من براش شما زو دور کنار اومدین باشون اگه گوش من به جای شما همه چونه‌ها رو می‌زدم و نمی‌تونستم ازش بابت کنم جویی سواندگی بشه آخه برای این دختری تو خیلی کم سن و سال بود دیلی تو حال بچه خودت بسنیزی که قراره ناقص بری زیر خواهد به خودش ما به دخترش حیات دادیم زندگی دادیم والله اگه من جای اون بودم تو برا برای برای این بولو بهش میدادم دادم. اله این بادر برای به این درمی ایش تو برای بولو یه جان رازی گفتم گفتم گروه خونی برادر خانمم خیلی کم داره ой من من کیا نیست دیگه اونا لاج برای همین حرف زدم. ببینم تو دوره افتدی از ذنه دلجگیره بچه‌ی من از این مروار میپوردی ای بابا آقا جون آقا جون زهره مار مگه نمیشه شورات آدم فروشی رو انداخته؟ دست از سر بچه‌ی ما بر نمی‌داره. زشت آقا جون مثلا ما عزاداری ما. غلط می‌کنی این رو می‌کنه. آدم فروشی چی آقا جون گنداش می‌کنین؟ یه چیزی اون نگهبان تو بیمارستان گفتن ما اشتباهمون بود که اومدیم اینجا مازهرا کردیم تو بیجا کردی. مامان حیاب نمی‌کنه. بی حیاب آقا جون. بس سفرج آقا. این چه کاریه می‌کنی؟ کلی کاریختی به سرمون. به درک. قصدو کلی آدم می‌ریزن تو خونه به خاطر برنامه من. بشین ببینم چه خاکی بعد تو سرمون بکنی؟ ب ماه نشستم ب بفر اینجا گفتیه؟ زن جوونی برای کا میدی بگوید کار داریم ما کلی آدمه که باید دعوت کنیم کلی چیز هست که لازم داریم بخریم کلی و کسری داریم که همش رو نوشتم تو. به درک کمکرس داری شما بازیه قرون پول به خودتون دیدی یا بابا من از خیلیت بازی خوشم نمیاد گرسی بازی چیه مرد آبرو بچمه این پولی که جلوتی پول خون بهرامه اگر نذاری خرج مراسمش بکنم به خدا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی شیرفن شد الهی ببیرم برات که پول خودت هم نمیذارم پرا خودت خرجو کن چشم سفره خانوم باشه من شیر فهم شدم باشه هر غلطی دلتون میخواد بکنید تا آبروی مراسمه بهرام خراب نشه باشه ولی به یه شرط. هیچ اهدی نباید بوی از قضیه کلیه ببره ولی با من تگرافیک بخ دوست دا کلیه قلومه پس تو نمیدونی اینجوری خوبه ببینید چقدر کم و داریم؟ اینا رو بعد چهجری تهیه کنی؟ خانم دخترش اومدن خرید. دارن به یخشان های ساید بای ساید و تلویزیان های LCD بزرگ نگاه می کنن. اینجام دفتری چاپ و کپی اعلامی فوت. پدر بهرام داره مدل‌های مختلف اعلامیه‌ای فوتو نگاه می‌کنه. سفورو دخترش از پل برقی فروشگاه شهروند در حال بالا آمدن دم در و خونه دو دوتا ونهاد با ایستاده. پشت یکیش یخچال و تلویزیون و وسایل خونه است، پشت اون یکی هجله و وسایل مجلس خرج. همسایا با تعجب از پنجره‌های ساختمون‌هاشون دارن به اونا نگاه می‌کنند. فرج‌آقا از ماشین پیاده میشه. آدمو گوزو داشا اوه صاحب کو منو میناچکار می‌کنم آفرین تبریک اینجا دخترش همچنان در حال انتخاب مبلمان و وسایل خونه است دم در دو تا والت نگه داشته پشت یکی دیگه‌ای بزرگ و قابلمه‌ای پخت غذا و کپسول گازی، پشت اون یکی مبلمان و وسایل خونه است. کارگروه دارن وسیل مدام تو خونه فرج‌آقا. سفورا و دخترش در حال انتخاب لباس در فروشگاه شهروند و در حال خرید مواد غذایی، گوش، لبنیات و چیزای مختلف. فرج‌آقا و عکس بهرام عبورده دفتر چاپ اعلامی فوت. اعلامیش آمادی شدی. روش نوشته در گذشت جوان ناکام شاد روان بهرام معتبر اکبر آقا اومده پیش همون دوتا مرد دلال خرید اعضای بدن میگم این قیمت ها رو همچین یک کلی نه یعنی چی؟ یعنی که الان ببین مثلا این فی چشم شما نوشتی قبل تو بازار چیز دیگه از من سوال کردم خیلی باراتر از این حفاظ شما نگران نباشم سهم شما محفوظه بدش من من که تنها نیستم خانواده این بند خودا متفاوه هم و تو. بای بابا بفرما در ذهن من قول کلیه شو منظور اون یکی کلیه شو به تست دیگه دادم و پیشم پول گرفتم تو یعنی چی؟ پسی ما با هم و قرار داشتیم اینکه این که بیمایه فرطی داشت. آها آه این شد اما یه امضا پایین کاغذ بنداز چی؟ هم معامله رسمیتر میشه همین که خب خیال هر دو طرف راحتتره آها لازمه بله که لازمه واسه اینه که یه وقتی اگه شیطون گولت زد خاصی دورمون بزنی تمام اعضای بدنتو مسادره کنیم یه جورایی گارانتی جنس سالمه تو امیلی سی سال یه سیگار نکشیده تو قهرمان اولمپیکی پیش رفت رفتن المپیک هوا به ما جوه من دو خدا سوارش مشتریای ما پول خوب میدن جنس خوبم میخوان ای بابا من دارم میگم یه نخ سیگارو نکشید تون اون بری برادر زنم چند خواستین ببری ببریمشین برون ورا حال و نه یوا ما حال خب بنویس واسه اش من ماشین هست نمی چک میشه قرپول دین صفرشو کم ننویسید وگرنه درست تر برسونجی بتونی بخونه <تصفيق> اکبر آقا سواره ماشین سرمی رنگ قشنگ شده با لباس مرتب و دستمال گردن و عینک آفتابی میاد تو کوچه دم در خونه فرج آقا کنار هجلی بهرام نگه میداره از ماشین پیاده میشه سلام آقا ابراهیم سلام اکبر آقا خدا بیامورد آقا بهرامو خدا رفتگان شمارم بیامورده در تلاشیم که یه مراسم توپ پاقا من براش بگیریم دیگه بالاخره یه محله بوده با یه و... بله عجب خیر و برکتی هم داشت خدا بیامون اکبر آقا از شین این ماسکت نیمهنی تزشکی نا نا رو بیرون میادی اونو بغل میکنه و میره طرف خلیه فرج آقا ببخشین ماشین مزاحم منزل شماست چه؟ بلکشین تلیگم کنی ادم اصابیت حالا نایدی ببخش دکتر ای وای این بچه‌ها کرده وای توی خونه فراجاقا پر شده از وسایل جدید و, و ده آقا، دوتا دم سیمون وصل دو تا به باند زردسه توی زرده به تو می اونش من نمیفهم هم آخه. چی بگم چی بگم خانم ببینی چه بساطی رای اینداختیم ببینید من و ببینی که عقلم را دادم دست شما چی اینقدر شلوغش کردی بگه بشین سرم گیج دفع از بخص این اتاقو بالا پایین کردی هی hey, ریجه میره همینه دیگه نشستم سریجام دستم رو گذاشتم رو دستم حرفی هم نزدم این بسات را این دفت برا چار تا تیگه جز چه پولی بازی در میرا من اومدم آبروی توی بچم بخرم من رو برای خودم گرفتم اگه برای خودم خریده بودم چو جای این یخچال سای بای سایت میرفتم بعد می‌داشتم. مامان راست میگه دیگه آقا جون دور زمان عوض شده الان مردم عقلشون به چشم آقا بابا من نمیفهمم مگه عروسی ننه منه رفته جایزی براش خریدید دوزار پول اومده تو این خونه شما دوست داری این دوزار رو دو روز فودش کنید هوا حال نمیخواد شما انقدر جوش بزنین کلی از پول مونده. اوه کل مونده کجا مونده؟ من که ندیدم نگاه کن چیکار کردن؟ سر میروزی رو جمع کردن ختنی جه تو من نره دیدم؟ ها حضرت آقا ممکنم بفرمایید اون اتاله که بیرونه مالکیه از کجا آوردی؟ من؟ نه خیر من وای اکبر خیلی خوشگله پولش رو از کجا آوردی؟ من به چکر میدونی لیزینگه بابا اون دیگه قسطی من گفتم این روزه با ماشین خیلی کار داریم باستیم ورونور بریم و به کارا برسیم آجانسی هم هر وقت زنی میزنی میگن نیستن رفتن تیریب میبینی آقا جون اکبر خودش حواسش به همه جا هست آره جون خودش من کاری به این عرفو ندارم فقط حواستون رو جمع کنید اگه اهل از خزیه کلی سر در بیارن این یه زر هم که داری با عزبه رفته آقا جون شما خیاله تخت ما همه ی حواستمون جمع اینجا بیمارستانه بهرامو میبرن پدر و مادر دختر بچه که قرار کلیه بگیره بیرون اتاق عمد مضطرب نشستند دکتر بهرام با یه پرستار میاد طرف پدر دختر بچه. چه نگران نباشید مشکل پیش نمیاد همیچی مرتبه ایشالله عمل پیوند انجام میشه در خونه همه مشمول تدارک مراسم ازاداریه توی حیات خونه سندلی چیدن و مهمونا روی صندلی نشسته فراج آقا قمگین توی حیات استاده میدار خانم کمی دورتر رو سندلی نشسته و با لباس سیاهی که پوشیده داره گریه میکنه و چند خانمم کنارش نشسته مانشک دکتر سخور دیگر دفترچی به منارش نزدیک میشه. ماما مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان مامان من بابام قهوه چی بود یا ننم قهوه خور خود نگاه کن میبین توش چی نوشته انگلیسیه های تو مخطر کنند چقدر گفتم برو زبان یاد بگیر به درد یه همچین روزی نمیخوردم حالا جمعش کن آبرمون میره خواستم واسه مهمونان قهوه درست کنم کلاس داره <تصفيق> ببینو بلایی بجم قهوه دستای <تصفيق> این چرت پرتا چیه سر هم می‌کنید؟ یه بار نزنی؟ تو بر تو چه کار داری؟ آقا برام که قهوه خور بود که با دوستم داشته باشه تو کارت نباشه به جای این حرفا حواست به میرزا باشه که فردا هون شهر آخریر بخونه بعدشم به موقع بیاد همه چیزا براد باشه برو خدا مریجه مادرش رو توی اتاق جاش فرمان اتاق عمله دفعه به هوش میاد و میشینه رو تخت اکبر توی خونه فراجاغا با اشاره به ماکت پزشکی توضیحاتی در مورد اندام های بدن میده هوای پاک و بردش میتونه این قسمت از بدن رو میبینید برای همیشه تا دم فوت صحیح و سالم نگرد این قسمت از بدن رو چی بهش میگم؟ ریه شوش همون جگرسفیتی معمولی حالا فرض بریم برای این بگیریم که داشته باشیم که سیگاری و دودی نباشه به جاش ورزشکار باشه اون وقت ریهش توی بازار قیمت نداری برای من خدا بیام ارز به تخته خیلی به سلامتیش میرسید لب به سیگار نزد فایدهش چیه؟ الان که مرده اتفاقا منیجان اشتوان نکنم مهم اینه که یه مییت سالم از خودش بعد از مرد چی باقی میگذاری مثلا شما میدونید قیمت یه قلب سالم از یه مییت سلامت چنده؟ مثلا اگر مییت شما دودی نباشه و ورز کار باشه و وقت دارایت چه قلبیه؟ اکبر چون... تو که سر تو بازاره مزن دستته یه قلب سالم عین حلو بگو بینم چند میرشد ولی نرخ متقیره بستگی به گروه خونه میت داره و جنسی که میت با خودش بله بله تشریف داره گوشی آقا جون یه <تصفيق> آمریکیه؟ نه. بله، بفرمایید. بله. فرج‌آقا مبهوت، گوشی از دستش می‌افته. بهروم روی تخت بیمارستان، پزشک و پرستاری زیادی دور بره تخت شلو و مشغول کارای درمانیه. فرج‌آقا و اکبر از پشت شیشه پنجرهی اتاق با تعجب و حیرت دارن به اونا نگاه میکنن. دامبری میگم نکنه این کار عمدیه این بیمارستانی ها بوده سیاه کاری کردن و یه جورایی ما رو گوشن سر کار این نشد که شوال کن صرف کن یه رو میگن زنده تیرو میگم مرده براقره ما نفهمیدیم مریض ما مرده زنده چیه مگه نمیبینی بچم داره نفذ میکشه مك... واج جون قبلا هم نفس می کشید دیگه قبلا نفس نمی کشید نه اخه قبلا با اون شیلنگای مصنوعی نفس نمی کشید با اون شیلنگا بود این نمی دونی شیلنگا رو در الان خودش داره نفس می کشه آوا جون اون شیلنگ ملنگو مال نفس اون شیلنگ آبی چیزی بود من نبات مال آبزیزی بینی بود این دیگه کم کن چرا قبالت چه چه چه خب مردمی تو چه شر مرده چرا قبالت زنده می شه دیگه اول دین کلو بکونم بعد هم شما اقا جون خبر نداری که شما که چک نیدی بده کار که نیستی. من بدبق چک دادم یه پیش قسته قبه دادم برای ختمش فقط من چند دفعه به شما گفتم اینقدر ریی پاش نکنید. پنج بار بارلهعاقل به با اون زن خیره سرت گفته دختر شما دیگه منی نمیخوام می خوم هم باشه زن تو گوشش بهده کار نبود. من این روز رو می دونستم یه همچی روزو رو, رو میدونیهاسی و بنددی بالا هزار تا چرخم میخوره تا بیاد پایین درسته. کو دارید چی دیدید؟ عل که بگوش چشمی و کنه خلو. یه, یه لطفیام به این بنده خدا اینو آبم ببرت. چی؟ چی؟ حرف دهانی تو فهم. ای بابا شما هم که نمیشه به حرف بزنید تا میای با حرف بزنیم گارد میگیریم میشی بروسلی عین خروچیانگی. از این دکتره بود. ای ول این بنده خدا رو انقولک کرد انقولک بر کر. خرابه عثمان. هر مرده‌ای نه قد انقولک کنی زنده نمی‌شه دیگه. این کُلیا اولش فروخت تو آمریکا ولی بالاخره این زبون به دهن میگیری بفهمم که خاکی تو سرم شده یا نه این مرد لاغرندم که عینک به چشم داره با روپوش سفید بونا نزدیک بشی نمیبون چجوری بود پس خودش یهو خود به خود اینجوری شو ها خایدی رو دکتر راجونا دکتر ما اسمو که انجه واس دادیم دست به چیزی نزدیم قتل نیست، چیزی ش اینجوری ما چه می‌دونم؟ همکارای بله شما نمی‌دونم میان ما چه می‌دونم؟ بله بیمارستانی شما به بخش اورژانس تون ترا داره داروردید. یه دفعه میگید تو رفتنیه، یه دفعه میگید مرتضی زنده شده. حالا من چه بلایی سرش را بردید دنبال مقصر گردید گیر دادید به ما. عزیز من دکتر جون، من باباشم. راست دکتر من دامادشونام. مرده مرده یا زنده شده آه. به من مرد بودی مرد به شیشی اتاق نزدیک میشه و مایه شیشی پاک کنو و میپاشه به شیشه و مشغول تمیز کردن میشه مرده خالمات خانه این پلاکارد رنگی زدم و روی پلاکارد نوشته بازگشت نگاهانی بحرام عزیز رو با آغوش گرم خانواده گرامی میداریم احالی محل سرم داره که مثل خواب میمونه بحرام من من قرص های منه بده زنده شده زنده چه خاکی تو سرمون بریزیم تو ما بهت براش راش خسنوری سم بجیره. بگم کی... منیش تو تو دوستان دختر خوب سراغ داری. واه خوش شدی مامان؟ یه قرصتو بخور حالا جا بیاد،, بیاد. اینجا اینجوری طرز صحبت کردن با مادرت. ها؟ اینجوری صحبتا کنی. برادرت الان تو شکه بیاد اینجا این آزار ببینی، عذت کله پات شد. دکترام گفتن استرس براش خوب نیست. چه ربطی در آقا جون؟ ربطش اینه که وقتی که برام از اینجا رفت تا یه تش نداشتی لباس های تو توش بشوری حالا اون بیاد لباس شوی ببینه ساید بشت ساید ببینه ال سی دی ببینه هزار یک کفت مار ببینه خب معلومه مندی خدا دو مرتبه سنگ گپ بکنه خدایا شکره چی بلایه سرمان اومد قضای کلیه شو چی کنی؟ من به من چرا این نگاه میکنی؟ به من چی ارتباطی داره؟ من برای خودم کلی مکافات و مشکلات دارم. این مساله خانوادگیه. بهتره خودتون با هم حلش کنی به من رفتی چی رو بهتره؟ ربطی نداره. همه آتیشه از تو گور تو یکی ولن میشه. مغز متفکر اینام توئه. آقا جون، تو هم دیگه ناز نکن اکبر. بگو حالا ما چیکار کنیم؟ بچه هم ناز کنم. من میگم باید یه جوری رفتار بکنیم همه ممکن که این خونه زندگی همین مدلی بوده از اول قبل از تصادف برامات. برام تو دربه مغزی شده مثلا فراموشی گرفته برای همین یادش رفته اگه میشه بله شدنیه به شرکی که سوتی ندی بس به من برم پول دواد گلم برم که میونه همه ما یه جو عقل تو سر تو فکر تنها چیزی که تو مخ این بشر نیست همون یه جو عقله همین همین عربارو بیرسید دور دارم به تو میگم برام که اومد اینجا همه هوش عواظتونه جمع کنید که از قضیه کلیه بوی نبره ها کسی دهندقی کنه با من طرف <تصفيق> این جمعون حرف من شد اکبار دعوتی ها قبرو چی کار کنیم؟ دووتی ها رو من یه جوری همه رو دست و سر بکنم یه روستم یه چیزی بحانه یه چیزی بزراشم قبل هم اگه خوب باشه روزی می نمیمونه قبر خوبه اینه آب آبنبات می‌برم اگه سه برابر نشد تو اون موقع اسمم عوض بود این نفر داره اسپند دود میکنه ریسای اینا به رنگی هم تو سردر کوچه آویزون شده یه پسر بچی با تو تشخرو اومد ماشین الفراغ دمه در پارک می‌کنه بعدون تو ماشین نشسته فرج آقا کمکش میکنه پیاده فراجوها و اتبر زیر وقل رو گرفتن و به طرف خونه می‌برند. اهالی محل تو توچند بحران با تعجب به مردم نگاه میکنه پلاکارد رو میخونه تقسید همی کوچه نگه میداره ای وای همون مرد روزخانه مرد روزخان با تعجب به بهرام نگاه میکنه یه گسمن با قصاب جلوتر ایستادن بهرام به سختی را میره یه ماشین که اعلامی های فوت بهرام با پرچم سیاه به شیشاش چسبوندن وارد کوچه میشه بهرام با تعجب نگاه میکنه چند مرد از ماشین پیاده میشن. عکس بهرام قاب شده با نوار مشکی دست یکی از اوناست. بهرام با دیدن اونها قش بایدو بود عصا گیران تو با ای کاش بیمورد ما بایدو بود که تا وقت حروسی آخه به دین امروش به دین امروش boro boro pekar گشتو بازا، گلت آن با فرش با وحشت از خواب میپره و داد آقا با وحشت از خواب میپره و داد میزنه پس اینا همه کابوس فرجاقا بود برام کجاست؟ بیمارستانه چیه چته؟ هیچ. فقط یه فردا هوای این فامیلای تابرده داشته باش کار دستمون ندن فردا دوباره همون صحنه ها تکرار میشه دمه در منیجی و مادرش با لباس رنگی منتظر ایستادن ماشین اکبر آقا اومد بحرون با کمک پدرش از ماشین پیاده میشه اکبر و فرج آقا رو به طرف خونه میبرم ندامت من ماشین ما تو کوچه دم دن. چند تا مرد سیاپوش از ماشین پیاده میشن یه قاب عکس با نمور مشکی دست یکی شونه خاطرش هستن. آقا جان کیه؟ آقا من صولی. ولی سن میسن. باله. خدا رو شکر. یانش اورور. منظورم این که خدا رحمتش کنه. شما آدرس اشتباهی اومدید. اشتباه. بله آقا طاهر مصطفی آقا تو این محل نیست. من تو مع الوزن اما شب شده اکبر تو ماشینشه دم در تو کوچه بهران بیرون ماشین یواشکی میاد نزدیک اکبر آقا ای آقا چرا سر من داد میزنی شما من بچت هم من که نمیخوام پول شما رو بالا بکشم کارو بردار نیستم فرار که نگردم که من از فروشش منصرف شده من چیکار بس بکنم خیلی خوب خانوادهش منظور خانوادهش بله من راضی میکنم پولو باست چی پولو من تا آخر همین هفته خانواده رو راضی میکنم جنس را شما پولو برای چی آره آقا چون قربانت خودم زنم ترکی چی تلوست اینجای چی هیچی یکی همکارای بود بس تو چیه علی ولتت اون کیترا اسقندجو اشفع داداش من هرچی به این مخ لاکیا دارن فشار میارم هیچی تو شتم نمیره کیبر تو کتت بره ها یه چیزایی تو هست علامت سوال دارم علی استادی من فکر کنم تو همون بیمارستان که بستری بودی ها اونجا به دکتره سفارش میکردیم این مخ یه چالش سرویس میواد هرچی توش بودو میری خیرو نو میگج میزاش سرش بابا این مثلا عواظه خون زندگی خودمون نکا پوز مامان آب منیش خود تو هستن این ماشینه اکر من تو دو تو کار دل جیگر نبودی نه هست من درسته من فکر کنم مخید تکو خورد واقعی مرد دست بیمارو با اسوارت یکی کردی آره این رنفار جایی نرزن تو فامیل دوست آشنا قریبه آبرو احسیتیمون میره آبرو فامل خودتون میره جون برام تو اصلا تو کار دلجگیر نیستی چرا نیستم هستم برام جون ولی نه اون دلجگیری بات بزنه خاکستر و زغال و بریزه به پاشه تصافت کاری نه تو کار بیزنس دلجگیر یعنی بینون بلاله سال سال دل‌آتو واردات اینجوری ها اجازه شو جی حرفمو اصلا چرا نمیذید مدته سر حال کنی بعد تو تازه از تخته بیمارستانم علی پایین پای شوخینی نی برو خونه بدی استراحت کن برو برو پایین موبایله کن رنگ برای چه مخواه بارو پایین بارو بارو افترار کن بارو دادست بارو بار میره بهرام رفتی تو فکر فراجو باید بزن به دست تو حیات کنار منقلی کبابه مادر بهرام سفراخانما هم هست دختر بچی گیرندی کلی و پدرش دمه درن دختر یه دستگل لستشه فارغ غم نشا هاجون من موندم سرم زعب آب چرا پهلومو بخیر کردن راست میگی چی بهش چیزی نیست زین اسواجو بیا اینو کش دادن خیلی معروق مگر این آوارزه نبود قلبش پر ریپ زدن افتاد رفت عمل کرد خب میدونم میش تو سرش با پای آشلاش برگشت بعد فهمیدیم که چی از پاش برداشتن پیوت زدن به قلبش دکتران دیگه وقتی اجات عمل میکنن یه چیزی کم میارن از جایت ور میدارن میذاری یه جایی دیگه. شما یک چیزی میگه آجون جون همینطور که نمیشه که تیق ملازن تو پک پلی آدم من میان فالا با دکتران سوار میکنم دکتر دادگر, دادگر نیستن خورمونه دارن رفتن معمولیت بخود خود, خود عذاب نده کیه بیا من دروان میکنم تا ن سلام ای خدا ای خدا ای خدا یه موجزه ما باید زودتر از اینا میامدیم دیدنه شرمنده تازه خبردار شدیم بذار ببینم آقا آقا چطوری؟ خیلی ممنون بخیات چطوره؟ میخاره وای همین لوره میگن آدم با یک چهارم کلیه سالم هم میتونه زندگی کنه خیلی برای <تصفح> شما که یه دونشو کامل داری آقا جون چی میگه؟ برام چون اون اموکامیه. اومده دیدنت امو کامی دیگه کیه؟ میگم چی میگه؟ اموکامیه کامیه دیگه مثل دای حسن اون دای حسنه. این اموکامیه. من کدرم میگم آقا جون امو کامی چی میگه میگه من یه کلیه سالم میشه ندارم ببین پسرم من زندگی دخترم اومدیون کلیه ای هستم که تو بهش دادی نه نه شما کلیه منو درواردیم دادیم دختر امو کامی ما هم چین کار نگردیم دکتر این کار کرد همین امو کامیت. او اومد اینقدر اصرار کرد تو نشست زیر پای ما التواس کرد آخر من و سفره درمون سو گفت ما با این یه کلیانی بدیم بهش بره پیگارش من زیر پای نشستم چی بود سر پول سر <تصفح> نشستم تو بگی نمودی پای در خودای ما رد بحروم یقی مرد رو میگیری و با اون گلاویز میشه کل از دست دفتر میفته فرنش میاد میانجی گرید شده. بهران قمگین تو حیات لبه ی نشسته فراش آقا و خان ما اکبر آقا و منیژه از پشت پنجری دارن اونو نگاه میکنن خاکی به سرم شد بچم داره تصمیره حقیقت خانم برای اینکه عقلت داده دست داماد عزیزت آره من از اول بهت گفتم که خانم این بچه یه روزی به حوش میاد شاکی میشه کلیهشو میخواد به خرجت نرو که نرف حالا بشین پاش بخور آقا جون شما اگه از اون اول به نقشه من توجه کرده بودین و مو به مو همون اجرا اجرام کردین الان اتفاقات نمیفتد ببین اکبر دلم میخواد با این دستانا همچی برای همه آتش تو میشه برس گور ما میشه موقعی که این رو این فرت فرت این تو این صدای خرتفر تا این پولار دیری دردهی تو تو کرده بود همه آتش از من بارم میشه از حوز پا میشه فرج آقا روزنامه ای رو میگیری جلو صورتش بریم بریم بحرم چیدن یاد بریم میشه بیشتر سکوت نشستی کجا میریم وقتی شب دردت پیچونا آجون پیاده روی برات خوب نیست. ام. بمون خونه استراحت کن. چی؟ می ترسین به قلبم فشار بیاد؟ نترسین نواش کنین؟ ها؟ بده من سویشو ها. چی؟ سویش سوئیچ ماشین من؟ ماشه تو؟ آره، پاوری نداره بیا برادر خانم. نگران نباشید. نباشی. شما کُلیات می‌فروشید دل می‌خواید. چی؟ آوازه واش چیی نذاری؟ بهرام سوئیچو از اکبر می‌گیره. یا چی؟ بای روبیلانسرو جواب میده. کاله. من, من... من پس من تی اینجا کارخانه تولید ای غذای آماده است. پدر دختر بچه ای که کلیه گرفته مدیر اونه. اون در حال نظارت به کاره. بله. به تلفن جواب میده. مدیر عامل دفتر میشه. سلام. چرا نشاندار؟ یه آقای خیلی وقت منتظر شما چست؟ نمیدونم سع کردم جاش رو بگیرم اون به زور رفتن داخل به زور مدی رو می این اصلایی در نگاه میکنی. می بینی چه اومده اینجا ؟ من اومدم رو پلا بود میخوای زنگ بذام به پلیس ؟ نه آشناس ببین من میرم تو؟ باید در بگم دست باشه. اگه لازم شد بهتون علامت میدم. باش. فقط چطور یالا میده چه میدونم. خب میتونی یه سوت بزنید؟ سوت؟ باشه سوت میزنم. هوای منو داشته باش. یادو می‌خواد. من که واقنگیت شدم. پیچیداست؟ نه پیچیده نیست. غیر منطقیه. اصلا خطرناکه. دختر من تازه داره به این کلیه پیوندی بدنش عادت میکنه. شدنی نیست. این دیگه مشکل شماست و دخترتون. من کلیه‌امو می‌خوام. مدیرامل دست چکش رو بیرون میاره ما مشغوله نمشتر نشه بیا فکر میکنم این مشکله سهل کنم بهرام چکو پاره میکنه یه بار خرید و فروش کردی بسته آقای اموکامی. چهار روز به ملت میرم اگه کلیه ما پس تو که دادی دگنه به قانون طرفی. منو تهدید میکنی. مگه ما کلیت تو به زوررت رو تنت کشیدیم بیرون. ف و فامیلی اومدن اونو با رضایت کامل دادن به ما. صاحب کلیه منم می که راضیم نیستم. آقای مخترم، بهرام جان. خواهش میکنم بیا از خیر این کلیه بگذر. این بچه تازه داره میفهم زندگی یعنی چی؟ بعد از مدت ها فردا داره میره مسافرت. سلامتی کجایی ترکیه ساعت پنجم پرواز داریم خوش بگذره پرواز کنید ولی بدون کلیه من چرا لجوازی میکنی تو اون موقع اصلا تو شرایطی نبودی که کسی نظرتون بپرسه چطوری بگم تقریبا مرده بودی الان چی الان هم شبیه مرده ها؟, ها؟ به نظر شما یه مرده میتونه باشو بایسه میتونه حرف بزنه میتونه دستشت تکون بده اصلا یه مرده میتونه راه بره؟ یه مرده میتونه سود بزنه؟ با صدای سود در اتاق مدیرامل باز میشه و نگهبان چوب به دست وارد میشه اکبر توی خیابان داره قدم میزنه و با خودش حرف میزنه یه ماشین با سه سرنشین سر راهش توقف میکنه همون دلالای اعضای بدن هست این برای ببین اوا فرار رخصت بده در رکاب باشی. بگیرم تو ماشین با اکبر فرار میکنه. اونام تعقیبش میکنه. اکبر میرسه تایی کوچه که با نرده بسته شده. دلال ها با ماشین میرسن. از ماشین پیاده میشن. میان طرفش. داری. یه چیزی چیزی کلمه پزشکی در برابرت هیچ نداره بگه بجز سکوت. اصلا یه معجزه است. من خیلی خوشحالم که پزشکی تو بودی. پس برای اینکه منم خوشحال باشم که شما پزشکم بودین، کارم به شکایت و دادگاه نرسه، یه لطف کنی کمک کنی من حقمو بگیرم. او من کلیا میخوام دکتر. جان زدم به زندگیم، همش شوره مسترام. یه من آب نمیتونم بخورم من. عزیزم اگه مشکلت این باشه این حل میشه خیلی هم سریع. ولی کاری که تو از من میخوای این نشدنیه. پسژ اون تو دو هفته نشده که از یه عمل جرایی سخت اومدی بیرون خیلی خطرناکه هم برای تو هم برای دختر آقای نشاندار هنوز بخی ها جوش نخورده چی میخوای از من کلاممو میخوام کل رو میخوام اصلا اودی یه بار اتاق عمل ببینی چه خبر اونجا؟ اصلا شده یه بار بدی تو اتاق عمل ببینی وقتی که تیف میکش از زیریشک که بیمار چه خولی می پاشه بیرون؟بد دیدی منی دا می ترس بی براییه بار سوار موتور بودم شاه شاخ رفتم خ بانات شیشه. همش لایی که که کشیدهم یوافتام اکهی دل قافل یه شیشه گرفته به پهلوم جر داده از کجا تا کجا سر روده‌مو رو گرفته من دلستم که نپاشه بیرون چند گالون خون از ازم رفته باشه خوبه چند گالون دکتر پایداست دل گولد ما گرفته بودم پایداست فرمون موتور هر اینجوری قول به پولبوق در روده‌م بود که رو زمین می‌کشی آقا شما کلیه ما راحتن این دختره بکش بیرون بغاش با من دیدیم کلیه تو گرفتی به چه دردت می‌خوری می‌خوای چیکارش شما چیکار دارید دکتر جون کلیه منو بده میخوام بذارمش تو شیشه الکول همتین بزارم جلوم نگاش کنم کلیه خودمه دیگه منیشه داره صورت افر آه. پاسمان میکنه آو یواش نوالله میلینیم پشت دادم اگر روبرو بود من میلیدم میزنمشون آو چیلیمت بهت گفتم یا با این بحرامو رو باش کن نرفتی که لفتیم نیگه قراش خوب و دو رفیق و مونمش در ایسران شدی بهران در حال بررسی اعضای داخلی مانکن نمیتنی پزشگیه ببینم مطمئن چیز دیگه یه تو شکم بیشه اما مولا نکردیم حالا ما اگه ویل میکنه آخو بکیم اگه ما دوست دیم اصلا خوالله برنسفت بازگولی به جمال دوست اون حداقل اقل وسایل خونه آدم میبره. کاری به دل قلبه آدم نداره که آقا جون با داداش ببین برنسفت شما روی هرچی دزد ریا رو که دستش میندازه زمین دوز آی دزد اینا مرد آی گوسه من جوابین بیگم او قوی نه خانم نه بس شماره 626 هواپیمایی ماهان به مقصد استانبول دعوت مشوار جهت سوار شدن به هواپیما به خروجی شماره 14 مراجعه کنید آموکامی مگر شما ساعت 5 پرواز داشتین الان میاید تو اینج چکار میکنی جناب سرباز خودشونن بگیرینشون یعنی چی این کار چیه ببینین این آقا مدعیه که شما کلیه شون دزدیدین الانم داره از کشور خارج میشه. میشین جناب سرباز دزدی چی این آقا داره شلوغش میکنه داره شلوغش میکنه جناب سرباز من که جای بخیامو نشونتون دادم میخوای دوباره نه لازم نیست بالاخره این کلیه پیش شما هست یا نه بله جناب سرباز پیش ما هست اما اصلا اینجوری که این آقا ادعا میکنه نیست ما هر کاری کردیم با رضایت کامل خودمون رضایت چرا شما ما سر روح هم خبر نداشته از این موضوع؟ خیلی خوب. لطف کنی چند دقیقه ما منتشفی بیاریم مراسمت. چرا شما ما به حد کافی دیرمون شده. لطفاً کوتاه بیایید. ما زیاد وقتتون رو نمیگیریم. اصلا این کلیه الان کجاست؟ تو بدن دختر من. بفرما. خودش هم کرد. اونا اونه. ببرید. اینم بعد بیا. آقا خجالت بکش. به بچه چه کار داری؟ من کاری با بچه ندارم. من کلیه ها میخوام. کلیهت که پیش این نی. فیلم جدیده. آره. بابا داره دروغ میگه. دروغ چیه؟ مادر دختر بچه رو محکم نگاه میداره دختر جوان قد بلند و زیبایی داره به طرف اونا میاد بهرام با تعجب به اومدن اون نگاه بکنه نازنین زیبا هم با تعجب به بهران نگاه اجازه بده نازه اینجا کلیت پیش این دخترم. سلام نازنین بابا شما آقا بهرام همه آقایی که کلیتشون رو اهدا کردم به شما بله حالتون چطوره ببخشید شرمندستان وقت نشد برای تشکر بیام خدمتتون شما مسافرین من من نه من من آدم چیز کنم آدم عذره کارم شما رو که ان شاء الله به سلامتی خوش شما بس. چرا زحمت کشیدین؟ ما باید میومدیم خدمتتون. پس ظاهرا شما از این فونوادی دیگه شکایتی نداری. پس اصلا شکایت داشتم که من یه سری تفاهمی شد، برطرف شد، رفت. حل, حل شد؟ حل شد. پس کلیاتون چی؟ خانم الان وقتی این حرفاست. ان شاء شما از سفر که برگشین، سر فرصت یه جوش صحبت می‌کنیم. بفرمایید. بفرمایید. شما هم بفرمایید. بفرمایید. موفق باشین. با اجازه. <تصفح> باو شد. خیلی ممنونم نیدونست همه غیر محتمی بست بابا خیلی ممنون خیلی معرف <متصف> خدافز آقای مدیر آمین بهرامو میبوزه خورمادی به راه میفتن نازنین در حین خدافزی برای بهرام دست تکون میده بهرام با به رفتن اونا نگاه میکنه همیگی اونا دم پله ها میمونن از سفر جا موندن برمیگردن و به بهرام که همچنان ایستاده نگاه میکنن بهرام خجالت میکشه و عقب عقب به راه میفته ای وای پشت سرش چنت چمدان هست پاش به اونا میخوره و میفته به هم میخنده بهرام با, می با عجله پا میشه و میره تو خونه فراجاقا همه حیرت زده نشستم. بهرامم روبروی اوناست مادر تو مطمئنی حالت خوبه بیرون چیزمیز ناجوری نخوردی نه این از همون اول که مخش تکو خورده تو تکو خوردن مونده به میشه بحثاتی را انداخته هر روز یه بامبول من نمیدونم انتخاب با خودتون یا همین فرد و شب بینیم خونه آقا نشاندار دخترشو برمین خواستگاری میکنیم یا ما میرم دوباره کودی آماز بیرم. من میگم برام خیلی فکر خودی کردم بسگز با اون خانواده خیلی به اقتصادی اقتصاد داره یک خونه است باز بوی کباب به دماغت خورد وا دادی نداردم وای آقا چون شما هم دیوار کداتر از دیوار اکبرگیر گیر نمیارین اه؟ اه؟ اکر دیوارم داره ببینم اگه تو عقب افتاده هستی این همه همیشه طرفداری این شوار چاخانتی خدا رو شوک. به ما مان نداد ولی عوضش دوتا بچه خول و چل داد خلوچل و چل بودنمو نمیدونم فقط نمیدونم آقا جول من یه جفکلیه کلیه داشم که الان یه دونش نیست آقا درسته ما یه قلطی کردیم درست حالا شما بفرمایید حضرت عجل اگه ما بخوایم از سر تخصیلات ما بگذری با چی خاکی تو سرمون برسیم آره مادر هر چی تو میگی درسته. حالا چیکار کنیم؟ فدات بشم. بابا من چند دفعه بگم همین فردا شب میریم خونه آقای نشاندار، دخترشو برای من خواستگاری می‌کنه. Eyvaz sicher. Eyvaz. باشه ولی من نمیام. خونه آقای مدیره، مادر نازنین سینی چایو میذاره رو میزی. خیلی خوب کردین تشریف آوردین. کاش با خانواده میومدین. من قبلا هم چند بار به کامران گفتم که یه ترتیبی بده که دوره هم جمع بشیم. انقدر گرفتاری که فرصت نشود. خواهش می‌کنم حتما خانواده هم تشریف می اره براتون. بازم ببخشید که من باعث شدم سفرتون به هم بخوره. حتما قسمت نبوده. حداقلش این اتفاق باعث شد که سوء تفاهم بین ما از بین بره و همه چیز خاطر به خیر بشه. گفتین امر خیر نازنین خانم تشریف نازنین الان مید خدمتون نازنین نازنین نازنی جان شما چیزی میخواستیم بگین من میخواستم بگم اما کامی روزدگار رو میبینی چه بازی عجیب خریبی داره اصلا کی فکرشو میکرد کلیه من بتونه سلام حالی شما چه خیلی خوش اومدی. بهرام یه دست گل با خودش آباده که همینجوری تو دستشه بفرمه بهرام پا با میشه با گل زدی رو برونی نازلین نیسته نازلین میشین رو ما بفرمی بهرام میشینه پدر و مدر نازلین به هم نگاه بکنی بله میفرمونی چی بگفتم؟ آه آه داشتم میگفتم که به قول خانومتون یه کاری کنیم بیشتر دور هم باشیم این که خیلی خوبه ولی من کاملاً حرف شما رو درک نمی منظور من اینه که چون بگم آه... راستش من میخوام نازنین رو از شما خواستگاری کنم خوب خیلی بیجا میکنی. میشه خودت چی فکر کردی؟ هرچی به روش میخندم های پروتر میشه. من چی گفتم؟ بفرمایید آقا. بفرمایید خونه ای من بیرون. یعنی دخترت رو نمیخوای با من بدی؟ من جسد دخترم رو به تو نمیذارم. تو فکر کنی کی هستی؟ چشات کوره، موگه می‌خواستی و در بیاری میپرسی من کی هستم؟ بعدش هم نظر نازنین خانوم شلته. آقای محترم، خیلی ببخشید. من حاضرم تا آخر عمرم دیالیز بشم ولی زن آدمی مثل شما نشم دازن این پا میشه و با اجری میری تو اتاقش. بهران وا میره مفرمای نخواب افتادتو نمیرم نه پس نمیدی تا آخر هفته باید کلیه منو پس بده. هر وقت هفتاد میلیون منو پس دادی کلیتو تحویل می‌گیری. هفتاد میلیون تومر بله حتما اینا بهت نگفتن. اینجا تو خونه فرج آقا یه عده زن و اومدن و در حال خرید لوازم خانگی. بهروم تو حیاط رو ها نشسته و منتظره. مال ما بده اینکه بره اون دنیا میاد این دنیا تا. من جواب معلوم چی بدم؟ دفعه چک دارم. آقا چیکار میکنی خرابش نکن. نمی‌خوای بخری بذه زمین دیگه اون تو الان توش قهوه نداره که بذ زمین بابا. خانم اون کارتونا رو پاره نکم فافریکیش به هم میکوره نمیخریم بیهن برین دیگه دیگه پو چقدر مامانیه ازتو بپلو مامان جون تکون نمیخوره آقا جونت کو کجاست آقا برو اون ورا ببین فروشیه اون تلویزیون نی خانم این محشوفت ده خروشی سدش درمده چه برسه به ما میگم دعاشت که توریش ریش نشد کشکی بابا یه تولیش شده بود میترسیم کلی بابات بابا تو به فروشین بریم بجایی چه نمیفره چه میفرمن حالا اون نوع یا کونه خانم این فروشی نیست بزنیم تلفن خونه همونه حیوه هم دارید میزنیم آقا اونات پره میافته بزرسن جاید حیوه هم داریم برور میکنیم ای زهرمار آقا خروش میخواد چیکار کنه بابا خب دوست داره دیگه میدونین که چی این چیه خانم قهوه سازه کارش چیه قهوه میسازه دیگه عزیزم چجوری کار میکنم کارگر توشیه قهوه که پخ میاری بیرون اکبر اقا اولینو میزنی به برق بعد این دکمرو نه دکمر رو. دقیق نمیدونم ولی تو دفترچهش همه چی رو نوشته البته انگلیسی. بایدی مامانه ترجمه کنه برای بکنم چیزه به درد نخوریه ارژینه ها خیلی ممنون به دردم نمیخوره پشترنگه وشنگه منیج اصلا نفروشی بریش یا خیلی آماد خود کرد پس تو قهوه بدی. برش آقایی توالت فرنگی از اونایی که مثل صندلیام و متحرکن و میاره میزه رو میزی که اکبر آقا و منیج پشتش نشسته ها؟ این چه؟ اینا آن بابا بزرگم که دو سال پیش اومد اینجا بهران براش خرید خدا بیا تو انباری بود یه دستمال بکشی روش ها نوی نوی دستمال دادی؟ آقا دستمال خلاصی. خلا بشه خلا. میکروب چه؟ همش خدا بیا بود دوبار نشسته روش دوبار اینکار مثلا دوبار نشسته میکروبش سادر نمیشه بابا یک صوب خوری که نیخ خلاس یه سمیده خودم تمیزیش رو کنیم آفراد چند اینو؟ 20 تومن دونموش در تومنه این دو هیفته و افصد خیره شوی بیش ولی برو این هم هزارتون دیروش بیشه شوی شوی شوی شوی بیشت 100 و سوپ خیره شوی بیشت داشت که آقا جو نفتش راه داشت مگه مکروفیلی پس هم به چه زبانیه اوه خلاک دیگه زبون نمیخواد شب شد همیگی توی حیات آقا جمع. بابا من 11 دفعه شمردم درسته دیگه این میشماری پنجا پنجا و یک و چی بود میگفت جنس ها بذاریم اینجا رو هوا میبرم آقون بیشه در و همزایی رفت چه جور خارو و خفی شدیم بعد از این محل پاشیم من دیگه نمی نمیتونم پم از در این خونه بیرون بذارم اصلا بریم خارج مالجو من و منیجم با تو میره. باز تو خانم یه چیزی برخواست دلگور کردی حالا اگه من اولاق به حرفایی تو گوش کنم این خونه رو بفروشم اینا رو آلاخون با بکنم. تو آگریت هم می‌گردی سارجاش. اون من اول هم گفتم اینا رو که این مالا نمی‌خرم، به دردشون نمی‌خوره که. مالا اکثرا چای خوردن، قهوه خوردن، قهوه دوش می‌خردن. مایاشم یه والته. من فرضاً والته منصور حسنی رو می‌گیرم، همو می‌بریم بالا. لازم نکرده. میگم از, می از خرسه امسال بد همش یه جا شما نمی‌خواد زحمت بکشی. گیریم که همشو یه جا هم برد. کوت 70 میلیون. ماشینا میرم آگهی میکنم فردا کی تو مزیر قیمت می‌فروشم. به من ربطی نداره اگه بس به شما رب نداره فوزولی نکن در طبابت کجا میری این وقتی وحب شد میرم هوا بخورم حفیه بلوغ میگه میره سیگار بکشه بگیش کنیز بری ای وای پدر نازمی پرسدرم خیلاتی بید بح بح بح آقای عموکا میخوان بفرمین بفرمین بخواد دیری تشتیبا بادیم همه رو فروختیم شما که قرار بود یه هفته دیگه بیان چی شد دو روزم نگذشتی که هنو من برای پول اینجا نیومدم قبر چی مادی؟ اومدم موافقت خودمون با ازدواج شما و نازنین علام کن اه اه دیدی من جون من از اول آقا جون نگفتم این آزمازم از اصابیه گفتم یا نگفتم نه کی گفتی؟ من هرچی فکر میکنم میبینم نمیتونم سلامتی دخترمون به خطر بندیزم من با ازدواج شما و دخترم معافرمم اینجوری شما هم لازم نیست چوب و حراز به زندگیتون بزنید هر موقع آماده بودین میتونیم مراسم رو اجرا کنیم دقیقا این اوق و میولیم میمونه این بشر خیلی خود نازنین خانوم چیشون از ازشون چیه با نازنینم خیلی صحبت کردم متقاعدش کردم که اینجوری برای هممون اون بهتره اون هیچ وقت رو حرف من حرف نمیزنه همسایه پشت پنجره‌های خونه‌هاشون وایسادن و دست می‌زنن توی خیابونای شهر ماشین گلکاری شده اروز در حال حرکت که بهرامو نازنین توی اونن اروز خانم بالباسه اروز پشت فرمان نشسته نگه میده بله ب... شروع وایستادی؟ بهرام جان میخوام یه بار دیگه به خاطر رضایتنامه احترای کلی ازت تشکر کنم واقعا خواهش هم... میکنم تا آخر زندگیمون دیگه اصلا حرفشو نزده باشه دیگه حرفشو نمیذارم هر حرف چی که تو بگی اصلا کلیه من قابلی نداشت ولی تو میدونی که مهریه من خیلی قابل داره برای همین ازت میخوام همین حالا تمام و کمال مهریه‌مو بهم بدی شوخی خفه میکنی <laughs> <laughs> <laughs> نه کاملا جدی میگم یعنی چی چرا مسخرهوازه امیری خجالت بکش تو بکش مهریه حق منه شرعا و قانونان این دل مطالبهام هست منم حقمو و همین الان میخوام چرا زور میگی؟ من از کجا در بیرم دو هزار و به تو بیدم تمام بها حالا اون دیگه مشکل خودت شوهر خوبم آره کجا میری؟ نازری؟ کجا میری؟ نازری؟ بحران چشماش گرد میشه خانم پیاده میشه و میره طرف پاسگاهی که اونور خیابونه. بهرام مستأصل تو ماشین مونده. خانم با پلیس میاد طرف ماشین. بفرمایید سر کار آقای دامادی که میگفتم خودشه. شما اینجا تشریف داشته باشین لطفاً با من بیان برای چی؟ تشریف پیارین کلان تری ملوم شیم شما بفرمی شما بفرمی بفرمی بفرمی بفرم. من برم بفرمی برم برم برم عروس و بودو محرام بودو عروس و پلیس بودو محرام میرسه بیه بشکه فلزی خالی میره داخل بشکه عروس و پلیس میرسن کنار بشکه تا میکوبه به بشکه بشکه قل میخوره و میره بشکه وسطی اتوبان همینجور در حال قلقادنه یه دفعه یه مینیبوس از روی بشکه رد میشه اینجا بیمارستانه پدر و مادر بهرام و اکبر و منیجه بانگرانی با نستر بهرام ایستدن بهرام با سر باند پیچی رو تخت درست شده به حوش اومد <تصفح> <دیدی. تصفح> نه اشعاش میکنه نسیمه بیدار میشه به حوش اومد خدا رو شوش بهرام جون مادر بو... نفس منی تو. این سوپر تو؟ میگه من چی؟ من من شماها من اجازه هار شدم. من هار که به خاطر پول هر غلطی می‌کنی. من شدم. لطفاً همه آروم باشید. یه اجازه ببینم چی شده. همون یه کلیه‌ای که ازم کیشتی میرون بسستون نابو؟ واظن می‌خواد یکم کیشتی میرون. پلی یه دری رو خانواده از شما پر رودتر و بیمرفتر من تا حال ناید دکتر الای فداات میشم این بچه ای من مغزش تو خورده تو رو خدا به دارم آره. آره چکر خورده من هیچیم نیست حالم خیلیم خوبه این شما این که حرس پول داره میکرسدتون تدر من رو در بردی از آمتون شکاید بابا مگو از همتون تشکر میکنم آقا دکترید مغزش کجاستون دکتر دادگر کلاشه بیماریت هرچی بکشم از اون دکتر دادگر نامرد بکشم کول دکتر دادگر سرش در ما اینجا دکتر دادگر نداریم دکتر دادگر نداری اخر نداری پس کی بود که این کلیه امان تنم کشید بیرون نیمت بخی ازت تو دروردن کلیه دروردن کلیه تون کی دروردن اخر آروم باش آروم باش زیر تخمیر کجا می‌خوام میگم ولی چی آروم باش آروم آروم دکتر من مرگ مغزی شده بودم من رفتم یه دور اون دنیا برگشتم نه کسی به کلیه شما دست زده نه شما مرگ مغزی شده از اینجا چیکار می‌کنم مرغ مغزی که نمیتونه پنج ما زنده بمونه در عرض چند روز می‌میره تازه اگه شما مرگ مغزی بودی که به هوش نمی اومدی از شما کلی بخمون تردید می‌کردید این اوه موביל محکم مازرت شما رو ندیقید شما چند دقیقه تو هوا خوردید محکم خوردید زمین احتمالاً یادتون نیست اعضای بیمار مرگ مغزی که خرید و فروش نمیشه فتاعتشم این بچه من حافظشم از دست داده تو رو خدا یک کاری بکن برای بچه خانم جان ارز کردم این یه حالت طبیعیه بله طبیعیه میشه سزاریا نمیشه بخشون من من ازدامات کرده بودم من عروسی کرده بودم اخی زن میخواد این سوره زن داشته باشه بدید رن به خدا برات زن میگیرم ازداد بشم عزیز دنم زن میگیرم برات این طبیعیه محروم بعد از پنج ماه که از تصادفش گذشته بالاخره به زندگی واقعی عزیزان این برنامه با صدا برداری آقای علی حاجی ناروزی، تهیه کنندگی آقای فرشاد آزرنیا، اجرا و گویندگی من شمسی صادقی به شما تقدیم شد تا فرصتی دیگر خدا نگهدار